داستان دوم زیباترین مرد مقروغ جهان اولین بچه های که تیره و پیش خزنده را دیدند که از جانب دریا پیش می آمد. فکر کردند شاید کشتی دشمن باشد آنگاه دیدند که نه پرشمی دارد و نه دکلی و پیش خود فکر کردند که نه دریایی است. اما چون موجها آن را به ساحل کشند و بچه ها انبوه جلبک و شاخ و پرز ستاره دریایی و بقایای ماهی ها و تخم صدف ها را از تنش ستردند تنها آن وقت بود که دیدند آن جسم دریا مردی مغروق است. تمام بعد از ظهر را با او به بازی پرداختند. زیر ماسهابنانش می‌کردند آنگاه بار دیگر از ماسهها درش می‌آوردند تا یکی بر حسب اتفاق آنها را دید و این خبر را در تمام ده پخش کرد. مردانی که او را به نزدیکترین خانه حمل می‌کردند متوجه شدند که سنگین در از تمام مردگانی است که تا کنون دیدند. میشد گفت که به سنگینی یک اسب بود و همدیگر گفتند که شاید زمانی بس دراز در آب قوته میخورده و آب تا اعماغ استخوانش نفوذ کرده است. وقتی او را کف اتاق گذاشتند گفتند که از همه مردان دیگر بلندتر است چرا که به زحمت در آن خانه میکنجی. اما فکر کردن که شاید توانایی رشد کردن پس از مرگ بخشی از طبیعت این مرد مغروغ باشد. رنگ و بوی دریا را داشت و تنها شکل و شمایلش این تصور را پیش می آورد که جنازه یک انسان است. زیرا پوستش بالایی از گل و لای و ها پوشیده شده بود. حتی نیازی به پاک کردن چهرش نداشتند تا بدانند که مرد مرد بیگانه است. دهکت تنها بیست و تایی خانه چوبی داشت که حیاتشان سنگی بود و هیچ گلی آنجا نمی و این خانه ها تا انتهای دماغی متروک گسترده می شدند. سرزمینشان چنان کوچک بود که مادرها انگامی که دنبال کارشان می رفتند ترس و واهمه برشان می داشت که مبادا، باد بچه هاشان را ببرد. و نیز چنان کوچک که مردگانی را که گذر سالیان از آنها گرفته بود از سر اجبار از پرتگاه به دریا انداخته بودند. اما دریا آرام و گسترده بود و تمام مردان دهکده در هفت قایق جا میگرفتند. از این رو وقتی مرد مغرغ را یافتند کافی بود که به همدیگر نگاهی بیندازند تا دریابند بند که همه آنجا هستند آن شبانها برای کار به دریا نرفتند وقتی که مردها به دهکده های رفتند تا ببینند مبادا میانشان گم ای باشد زنها همونجا ماندند تا از مرد مغروخ مراقبت کنند. از علفها جارویی ساختند و گلولای تنش را پاک کردند سنگ های ریز دریا را که میان موهایش گیر کرده بود برداشتند و لایه را که تنش را پوشانده بود با همان وسیلهی که برای تراشیدن فلس ها به کار پاک کردند همچنان که به این کار سرگرم بودند متوجه شدند که گیاهانه تنش از دریاهای دوردست و آبهای عمیق است و لباسهایش کهنه و پاره گویی از میان گذرگاه مرجانی عبور کرده است همچنین دریافتند که او مرگ را با غرور پذیرفته است چرا که چهره افسرده و وحشتناک مردان مغروغ دریاها یا چهره فرسوده و نزار و نیازمند مردانی را که در رودخانه غرق ها می شدند نداشت اما از کار پاک کردن و شستشوی او که وارق شدند، تازه دریافتند که مردی بی‌همتاست و نفس در سینه هاشان گره خورد. نه تنها بلندترین، قوی ترین، مردان ترین و خوش هیکل ترین مردی بود که تا به بودند، بلکه حتی در همان دم که به او نگاه می کردند، در تخیلشان جایی برایش سراغ نداشتند. درده نه تخت آنچنان بزرگ پیدا شد که بتوانند او را رویش بخوابانند، نه میزی آنچنان محکم تا برای مراسم سوگواری و شب زندهداری از آن استفاده کنند، نه شلوار راحتی بلندترین مردهای دهکده اندازه تنش بود، نه پیراهن راحتی چاخترین آنها و نه کفشهای مردی که گندهترین پاها را داشت، زنها که مجذوب و شیفتی اندام سطرگ و زیبای او شده بودند، تصمیم گرفتند از یک تکیه بزرگ بادبان، شلواری و زیرپوشه کتانی عروسان پیراهنی برایش فراهم کنند، تا با شعن و شوکت به مرگ خیش ادامه دهد. همچنان که وار گرد او نشسته بودند و سرگرم دوختن بودند و گهگاه، در فاصله دوختن به او خیره می شدند به نظرشان می رسید که با تا آن شب هرگز چنین مداوم و یک نواخ نوزیده و دریا هرگز تا این اندازه بیقرار نبوده است پیش خود تصور می کردند که این دگرگونی با مرد مرده ربط دارد فکر می کردند اگر این مرد پرشکوه در این دهکده زندگی می کرد خانش پند ترین درها، بلند ترین صخف و محکم ترین اتاقها را می داشت. خوابش از چهارچوب اصلی قسمت وسط کشتی درست میشد که با پیچهای آهنی به هم وصل شده و زنش هم خوشبختترین زن ها می بود. می از چنان اواحتی برخوردار باشد که ماهیان دریا را تنها با صدا کردن نامهاشان، از دریا بیرون بکشد و چنان از گرده زمین کار بکشد که چشم سارها از میان سخراها بجوشد تا بتواند در پرتگاه ها و سخراها نیز گل بکارد در نهان او را با مردهای خود میسنجیدند و در این اندیشه فرو میرفتند که آنچه او در طول یک شب میتواند انجام دهد مردهای خودشان در تمام طول زندگیشان از پس انجامان بر نمی آین. و به این نتیجه می رسیدند که مردانشان را همچون زعیفترین، بی و بی ترین موجودات روی زمین از عمق دلهاشان ترد کنند. در پیچ و خم این گونه وهم و خیال سرگردان بودند که پیرترینشان که به مرده دریایی با دلسوزی بیشتری نگریسته بود، با شور و جذبه آهی کشید و گفت یاف شبیه مردی است که استبان صدایش میکنند. راست میگفت. کافی بود بیشترشان نگاه دیگری به او بیندازند تا ببینند که نامی به جز این نمیتوانست داشته باشد. سرسختترین ها که جوانترین آنها بودند ساعتی چند با این خیال دلخوش بودند که وقتی لباسهایش را تنش کردند و او را با کفش های ورنی میان گلها خواباندند نامش میتواند در رو باشد اما این پنداری بیهوده بود پارچه بادوان کافی نبود شلوار با برش ناشیانه و دوخت بدش بسیار تنگ بود و نیروی پنهان سینش دگمه پیراهنش را میپرند پس از نیمه شب سفیر باد فرو نشست و دریا در آرامش و خوابالودگی روز چهارشنبه به سکوت به هر تردیدی پایان داد او استبان بود زنانی که لباس بر تنش کرده بودند موهایش را شانه کرده بودند ناخونهایش را گرفته بودند و ریشش را تراشیده بودند وقتی دیدند که باید به کشیدن او روی زمین تندردند نتوانستند در برابر لرزش اندوه و تأسف پایداری کند آن وقت بود که فهمیدند با آن اندام تنومندش که حتی پس از مرگ نیز او را رنج میکرد تا چه اندازه باید غمگین بوده باشد او را میدیدند که زنده است و محکوم است از میان درها یک یکوری بگذرد و سرش به بالای چهارچوب درها بخورد و در دید و بازدیدها سر پا بیستد درمانده از اینکه با آن دست های نرم و صورتی رنگش که به دست شیر دریایی میمانست در آن لحظات چه کند و بانوی خانه که به دنبال مقاوم ترین سندنی می گردد و زهر ترک شده از ترس از او خواهش کند بنشین اینجا استبان خواهش می او تکیه کرده بر دیوار لبخند زنان بگوید نگران نباش خانوم همینجا راحتم در حالی که پایش تاول زده و پشتش از بس که در دیدارهایش همان کار را انجام داده مجروح شده بگوید نگران نباش خانم همین جا و اینها را فقط برای این بگوید تا دست با چه نشود و صندلی را نشکند قافل از آنکه شاید همانها که به او میگویند نرو استبان لا اقل صبر کن تا قهوه حاضر شود درست همانها باشند که بعدها زمزمه کنان بگویند از دستان کل پوک راحت شدیم چه خوب شد که آن زیبای احمق گذاشت و رفت این بود آنچه زنها اندکی پیش از سپیده دم در گردا گرد جسد به آن می اندیشیدند. بعد چون با دست مالی چهرش را پوشاندند تا نور آزارش ندهد، چنان شبیه به مرده ابدی بی دفاع و شبیه مردهای خودشان جلوه کرد که اولین شیارهای عشق در قلبهاشان راه کشود اول یکی از جوانترینهاشان شروع به گریستن کرد و دیگران که اینکه از رویاهاشان بیدار شده بودند کم کم آه هایشان به ناله بدل شد هرچه بیشتر زار میزدند بیشتر دلشان میخواست گریه کنند زیرا مرد غریخ در نظرشان هر لحظه به استبان شبیه تر و برای همین آنها بیشتر خود را به گریه می سپردند چرا که او استبان بیچاره درماندترین، آرامترین و متی ترین مرد روی زمین بود از این رو وقتی مردها برگشتند دو خبر آوردند که مرد مرده به دهکده دوروبر نیست تعلق ندارد زنها در میان عشقه هاشون از سرور و شادی احساس کردند آهی از تای دل کشیدند شکر خدا پس مال ماست مردها فکر کردند که آن نامه غیل و قال فقط از سبکسری و های و هوی زنانه است خسته و در مندست پرسجوهای دشوار شبانه تنها می‌خواستند. پیش از آن که آفتاب آن روز خشک و تفت و بیباد داغ شود از شر آن تازه وارد رها شود بیدرن که پارهای یک دکل و چوب‌های غلابدار را با تناب به هم بستند و تخت روانی ساختند که در برابر آن جسم تناور تا پای پرت ها تا بیاورد میخواستند لنگر کشتی باری را بر او ببندند تا به آسانی در امیغترین خیزاب دریا فرو رود. آنجا که ماهی ها چیزی نمی‌بینند، و قف با آسان از فرت دلتنگی و غرابت جرفای دریا می میرند. جایی که دیگر جریان تند و سرکش دریا او را به ساحل دریا باز نخواهد آورد. همانطور که در مورد جسدهای دیگر اتفاق افتاده بود. اما هرچانه ها شتاب می کردند، زنها بیشتر در پیه ترفندهایی بودند که وقت را تلف کنند. همچون مرغان حراسان این سوان سو چرخ می زدند و با سین ریز دریاییشان ور می رفتند. در یک سو مشغول بستن جناق خوششانسی به مرد مغروغ بودند و در سوی دیگر قطب نمای مچی به او می بستند. و پس از فریادهای بسیار که از آنجا دور شوزن از سر راه برو کنار کم مانده روسر مرده بیفتم مردها کم کم نسبت به زنهایشان احساس بدگمانی کردند و گله و شکایت سر دادند که چرا این همه تز اینها و نشانهای مهراب کلیسا را به بیگانه ای می میبندند زیرا علا آن همه ناخون و شیشه ی آب مقدس که به او بسته بودند کوسه ها همه را میجویدند جویدند اما زنها این سووانسو میدویدند دویدند و تلو تلو می خوردند و به کار انباشتن بقیه خردریز هاشان به روی جسد ادامه میدادند و در همین حال با آه کشیدن هاشان احساسی را بیان میکردند که با عشق هاشان سرانجام مردها به خاطر این همه غیل و غال بر جسدی دریارانده قریقی بی کس و کار، تکه گوشتی سرد، بازمانده از چهارشنبه از جا در رفتند. آنگاه یکی از زنها آزرده از این همه بیه دستمال را از چهره مرد مرده برگرفت و نفس در سینه مرد نیز حبس شد. استبان بود. نیازی به بازگو کردن اسم نبود تا او را بشناسند. اگر به آنها گفته میشد شد که او سر والتر رالیک است ممکن بود که لحجه گرینگویی و آن توتی بزرگ بر شانوان مسلسل آدم کشیش آنها را تحت تأثیر قرار دهد اما نه به اندازی استبان در دنیا فقط یک استبان میتوانست باشد و آن هم آنجا بود همچون نهنگی دراز کشیده بود با پای برهنه که شلوار بچه‌ای ریز نقشی را به تن داشت با ناخونهایی سخت از سنگ که مجبور بودند با چاقو کوتاهش کنند تنها کافی بود دستمال را از چهرش کنار بزنند تا دریابند که شرماگین است و گناه او نیست که این چنین این اندازه سنگین و این همه زیباست و اگر میدانست که چنین بیش خواهد آمد با احتیاط و بصیرت بیشتری به دنبال جایی برای قهر شدن میگشت. آری راست می گویم حاضر بودم لنگر کشتی بادبانی را دور گردنم میبستم و از بالای صخره‌ای خود را پرت میکردم. مثل کسی که دوست ندارد مردم را با تن مرده ی روز چهارشنبه آشفته و مضطرب سازد. و به قول شما مردم با این تکه گوشت سرد و کثیف که هیچ ربطی به من ندارد، مزاحم کسی نشوم. در حالت او، چنان حقیقتی نان بود، که حتی بدگمانترین مردها، آنهایی که ترخی بیپایان شبها را در حول و حراس دریایی احساس می وحشت داشتند که مبادا، زنهاشان از رویای آنها دلخسته شده و در رویای مرد مقروغ فرو رفند. حتی آنها و دیگران که سخت گیرتر بودند، از خلوص و سفای استبان هنوز هم تا مقص استخان بر خود میلرزیدند. چون این بود که مردها بران شدند تا با شکوه ترین مراسم تدفینی را که در تصورشان می گنجید برای مردی غریق و رها شده برپا دارند. گروهی از زنها که برای چیدن گل به دهکده های دوروبر رفته بودند همراه زنهای دیگر که نمی توانستند را که شنیده بودند باور کنند برگشتند و آن زنها وقتی مرد مرده را به چشم خیش دیدند برگشتند تا گل های بیشتری با خود بیاورند و با یک دنیا گل برگشتند همه جا چنان از گل و انبوه آدمها. انباش چه شد که به سختی میشد راه رفت در وا پس این لحظه در داور بود که او را همچون یتیمی به دست آبها بارند و از این رو از میان بهترین مردم پدری و مادری برایش برگزیدند و نیز خاله ها و امه ها دایی ها و عموها ها پسر ها و پسر دایی ها چونان که همه ساکنانان در شمار خیشاوندان نزدیک او در آمدند گروهی از دریا نوردان که صدای شیون و زاری را از دور دست شنیده بودند به سوی ساحل رو آوردند و مردم صدای کسی را شنیدند که با یادآوری سیرنها خود را به دکل بزرگ بسته بود انگامی که دعوا کردن که چه کسی او را به روی شانههایش در امتداد سرازیری که به پرتگاه ختم میشد حمل کند مردها و زنها برای نخستین بار از ویرانی خیابانهایشان و از خشکی و بیگل و گیاه بودن حیات خانههاشان و از تنگنای رویاهایشان در همان حال که با شکوه و زیبایی مرد مغروغشان مواجه میشدند آگاه گشتند او را به هیچ لنگری در دریا رها کردند تا به تواند هرگاه دلش خاست برگردد و نفسشان را در آن چند لحظه از غرون که آن اندام به درون ورده به طول انجامید در سینه هایشان حبس کردند لزومی نداشت که به چهره هم نگاه کنند تا دریابند که دیگر حضور ندارند که هرگز زنده نبودند اما میدانستند که از آن لحظه به بعد همه چیز متفاوت خواهد بود خانه‌هاشان درهای عریستر و سخفهای بلندتر خواهد داشت و کف اتاقهاشان محکم تر خواهد بود تا آنجا که خاطری استبان بتواند هر جا که خواست برود بیان که سرش به ستونها بخورد تا هیچ کس در آینده جرأت نکند به زمزمه بگوید که سرانجام لندهور جان سپرد آن مرده زیبا مرد آنها میخواستند جلوی خانههاشان را رنگهای شاد بزنند تا خاطر استبان را ابدی کنند و میخواستند چنان سخت دل به ببندند که میان سنگ لاخها زمینها را برای همه بهاران آماده کنند تا روی پردگاه و سخراها نیز گل بکارند تا در سالهای آینده به هنگام سپید دمان وقتی مسافران در کشتی های عظیم از خواب بیدار می شوند. از بوگ باخها بر فراز دریاهای آزاد نفسشان بند بیاید و وقتی ناخدای کشتی از روی نرده پلکان چوبی میگذرد با لباس دریایی و با آن استلاب و ستاری قطبی و با ردیف مدال های جنگیش همچنان که به فردگاو و دماغی بلند لبریز از گلهای سرخ در افق اشاره می کند به چهارده زبان بگوید آنجا را نگاه کنید آنجا که باد آنچنان آرام زیر بسترها به خواب رفته است آنجا که خورشید، چنان درخشان است که گلهای آفتاب کردن. نمیدانند به کدام سو بچرخند. آری، آنجا دهکده استبان است.